اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسلف المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وأول محمد عدن فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم مباحثمون در تبل محصومین بحث حبت سودا حبت سودا یا سیاه دانه یا اشونیز مطالبی گفتیم گفتیم پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها میکنه اون من کل دارن اللسان حتی امام صادق فرمودن تا هزار بیماری هم درمان میکنه یه تعداد بیماری ها رو شماردیم دنباله بیماری اگر کسی حضرت خانومش در دوران نفاس یا در دوران قاعدگی درد های ناشی از دوره نفاس یا دوران قاعدگی دارد قبلا انا گفتیم ضد دردای های بیسم ناره. چیه؟ شیمیایاش مثلا قرص شیمیایی هیوسین گیاهیاش مثل گل گلرنگ مثل گل خارمریم اینا همه زد قاعدگی‌های های دردناک یا نفاس دردناک امروز مبارسه خودم تو بحث سیاه دونه از مناسبترین نوشیدنی ها برای دوران نفاس و دردهای ناشی از قاعدگی و تقویت بانوان این از که سیاه دانه را با انار بیابانی یعنی انار وحشی که خود در بیابان و صحرا اگر یاف نشد انار خوب معمولی مخصوصا اناره یز که دونه درشته هستهاشم عین پفک نرمه اما کمر که عین فرض کن دونه برنج مونه واسه خوردم وحطه که مریض بخوره یا انار خوب معمولی کفایت میکنه و آب جوشانده و با اصل شیرین کرده در 24 ساعت سه بار میل شود پس سیاه دونه با انار بیابانی یا انار خوب معمولی و همچنین آب جوشیده بلر که درش اصل طبیعی هم زده باشیم رقیق شده باشیم روزی سه نوبت از این دوتا داروی مرکبه اسمیه مصرف میکن. همچنین اگر سیاهدانه رو در آب جوشانده ریخته بگذارن خنک شود می توان از این محلول به عنوان یک ماده پاک کننده مهبلی یا واژنی استفاده کرد. جهت شستشوی اندام تناسلی زنان این محلول مانند یک ماده که ضد عفونی کننده مناسبی هست چون خاصیت میکروب کشی دارد و تحریکات دستگاه تناسلی زنان کاسته میشه گایی میبینیم مثلا چی؟ مایه اضافی میاد بیرون گایی میبینیم مایه زدونگ میاد بیرون گایی میبینیم تعفنش زیاده و مانند بینید که نه حضرت خانومش اذیتشه؟ شه نه شوهرش اذیتشه؟ شه توضیح دادم از تحریکات دستگاه تناسلی زنان رو کاسته و از میان میبره و زیان داروهای شیمیایی در رابطه با پینتنه رو نیز نخواهد داشت یکی دیگه از استفاده های از سیاهدانه جوشانده سیاهدانه در مردان و زنان به اینکه به سر بزنن زیرا که ریزش مو در مردان و زنان داخل و خارج کشور شایع است به علل مختلف یکی استرس و استراب دلشوره و دلواپسی دوم سوء تغذیه سوم گرانی چهارم ت벌م ازدواج دیرهنگامم هم تشدید میکنه همه اینا رو حالا بیاین با سیاه دانه درمان موضعی کن مخلوطی از کوبیده سیاهدانه را که اصاره ترتیزک یعنی شاهی تو روایاتشیه میفهماید جرجیر اصاره ترتیزک به کوبیده سیاهدانه اضافه میشه این دوتا مخلوط میشن با یک قاشق مربخوری سرکه و یک فنجان روغن زیتون قاطی و مخلوط نموده سپس به عنوان یک تونیک یعنی به عنوان یک تقویت کننده حالا تو بحث ما تقویت کننده موی سر استفاده می شود این تونیک را به خارجیه این تقویت کننده موی سر رو به مدت یازده روز در آغاز شب به سر مالیده و پس از سه ساعت با آب گرم و ولرم و همچنین صابون یا شامپوی مناسب استفاده کنید یادتونه قبلا گفتم بهترین صابون اینجا صابون چیه گل ختمیه احسن صابونه گل ختمیه چو قبلا هم گفته بودیم با سرکه تبیع سیب ماساژ بده تا چربی اضافی پوست و چربی اضافی مو هم آب بره و موهای سرت هم بشه بشه بعد صبر کنی در مجاورت هوا خشک بشه بعد گفتیم اگر خارج داره و دونهای ریز چرکی داره با گل ختمی یا صابون ختمی یا شامپو ختمی بشوی شامپو طبیعی بشوی بعد خوش کنی بعد برای زد خارش قوی روغن کشنه یا روغن قصد بزنیم نه؟ رو قبلن گفتن پنجم امروز مبارسه اون اگر کسی مثلا دیابتی هست خیلی داروسش گفتیم قبلا ها مثلا کسی که دیابت نوع یک یا نوع دوه قند بیمزی یا قند شیری گفتیم سبزی خرفه بغلت الزهرا بغلت المبارک گفتیم خورش بامیه چرب و چلیس نباشه پر هم نباشه گفتیم دو عدد بادام تلخ سو شب گفتیم پیادروی آرام در سطح مستوی از نیم ساعت تا یک ساعت 15 تا 20 واحد قندشون میاد پایین نصف استکان عرق کلپوره اینا همه رو گفتیم حالا امروز ما سیاهدانه نقش مهمی در درمان بیماری قم دارد یک و اندازه یک لیوان از سیاهدانه آسیاب شده دو، نصف لیوان از بزر تل تیزک شاهی یک لیوان از انار آسیاب شده که پس از خوش کردن انار به دست میاد این دونه انار که خوش کل انا را خوش میکنی با دستگاه هیتر برقی یا شرایط خاصی که بهداشتی باش. چهارم یک لیوانم از ریشه کلم آسیاب شده که بعد از خوش کردن کلم به دست میاد تمام اینها رو خوب پودر میکنی مخلوط باهم میکنی هر روز شخص دیابتی نصف قاشق از مخلوط به دست آمده باید حداقل نیم ساعت قبل از خوردن غذا بخوره. اینی که گفتیم خیلی مهمه. چرا؟ چون هر شخصی حتی اگه سالم باشه، سطح قند خون, خون عادیش صد باشه. وقتی غذا بخوره، تا قبل از اینکه دو ساعت از غذاش بگذره، قند خونش تقریباً دو برابر میشه. مثلا 100 میشه دویست. به صورت اتوماتیک پانکراس یا لوزالمعده فعال میشه ترشو انسلین میکنه هضم مقدماتی که قالبن دو ساعته تو مهده طول میکشه انسلین،, انسلین اضافی هم که تو گردش خون ترشو شد قند اضافی غذای مصرف شده چی میشه همون جون؟ میسوزم لذا میگیم قبل از قضا قربون اسلام ولایی برم این هم که از قبل امام صادق علیه السلام فرموده از کجا میگه حاجبا؟ به دلالت ضمنیه نه دلالت تطابقی یا التزامی امان که از دلالات معتبر است دلالت وضعی لفظی اما به دلالت چی تضمنی از کجا میگی مثلا تو بابه قصه بحث خیار بوته ای و مانند حضرت میگه از این قسمت که خیار وصل به بوته است چندی شستی حالا از همین قسمت بخور یعنی از تلخه خیار شروع کن بخوردان خب در تلخی خیار انسولین طبیعه یعنی اول انسلین بدن تا تأمین کن بعد غذا و قربون قرمون امام صادق کی فهمده حالا یه بزرگوارا تو قرن چارده کی میگه؟ میگن درست شد اکثر مردم رایت کورکورانه از قرب و شر میکنن تلخی خیاره میدازن کنا پوست جنگی میدازن کنا حداقل اقل نیم ساعت قبل از قضا میل شود برای کاستن از تلخی این معجون میتونید نصف قاشق چای خوریم از اصل خالص به اضافه کرده و میل شود اه میخواستیم دیابتش بیاد پایین چون میگه نصف قاشق اصل خالص به خاطر اینکه باز قبلا گفتم اصل خالص سربیتول داره خون بالا نمیبره سربیتول 70 درصد سر در بدن تبدیل به انرژی و کالری میشه گلوکوز خونت تو بالا نمیبره نظیر میوه گلابی دیلاس، جذر که حویج زرده یا حویج رسمیه یکی هم آلو بخارا اینا همه سوربیتول داره قندخون هم بالا نمیبره شیعه بزرگوار ما متقصص بافشناس انسانی در کتاب بافشناسی انسانی و داره تو معارف بافت و چند تا کتاب هم داره که تو میوه جاتو، حبوباتو، سبزیجاتو، قلاتو از این حرف تو کتاب میوه درمانش دکتر محمد صادق رچان استاد ممتاز برجسته دانشگاه تهران پیرمد شیعه شیه عشری تو کتاب میوه درمانیش این چهار تا میوه ای که بسیتون گفتم داره که اینها سوربیتول داره و قمد خون و بالا بره. تو بحث اصل این هم باز دیگه هست مثلا زندگی زنبورغا پرفسور پونفریش برنده جایزه نوبل ترجمه مهندس شهرستانی یا مثلا اصل درمانی ماله مهندس صالح نجاب یا اصل درمانی دیگه سهیلا زمانی یا مثلا اینجا سیاه دانه و اصل دکتر محمد دریایی حالا هر کدوم از این بزرگوار هم باز مطالبی در رابطه با اصل هم چی؟ دارم این هم به خاطر اینجا تصور کنیم برایت علامت سوال نشه اشکال مقدده. چرا میگه اگر تلخه با اصل خالص میتونی بخوری؟ اشکال باییم دکتر مومن شیه نگیر حبهش درسته چون اصل طبیعی سوربیتول داره قندخونت هم بالا نهیم بره اون چار میبه؟ کسی که ضعف قلب دارد برای درمان ضعف قلب و تپش قلب دو تاش قبلا گفتم یکیش آبسی به اصله یکی دیگهش چیه؟ آب به یا میوه به یا مربای به با اصل این دو تا مبارسه خودم بحث سیاه دونه برخی از افراد مبتلا به تپش قلب یا ضعف قلب و ناتوانی پمپاژ خون هستند که درمان آن ترکیب روغن سیاهدانه با اصل خالص ترکیب روغن سیاهدانه با اصل خالص به نسبت مساوی است یک قاشق مرباخوری از معجون به دست آمده صبح ناشتا همراه با ورخی تمرینات سبک ورزشی تمرینات یعنی تمرینات سبک ورزشی یعنی پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاد دوم شنا در عمق کم برکه دریاچه دریا اقیانوس‌ها دریا. عمق کم یا استخر شنا در عمق کم مثلا یک متری یک متر سوم دو چرخ سواری آرام دو چرخ سواری آرام در سطح مستوی در هوای آزاد این ورزش های سبک اگر کسی روزی نیم ساعت تا یک ساعت انجام بده 15 واحد الا 20 واحد قند میاد پایین پس یک کاتالیزور مجاورتی گذاشتیم به نوع رفتارهای مثبت با خود این تا ورزش سبک رو از خارج حاشیه بزن. خب سیادون با اصل که خودش قنده میاد پایین. دوتا دست به دست رو هم می دهن. سی واحد قنده خون مریض امد پایین. این هم مؤمنات تا اینجا. ترکیب روغن سیاه دانه با اصل خالص به نسبت مساوی. یک قاشق مربخوری از معجونه به دست آمده صبح ناشتا. همراه با برخی تمرینات سبک ورزشی که توضیح دادم، موجب تنظیم زربان قلب و درمان استراب و تپش‌های قلبی است چون تو شرایط عادی تپش قلب چنده در دقیقه؟ هفتاد تو خواب عمیق تپش قلب چنده؟ شست حالا از هفتاد که همجون میره به بالایی داره تپش قلب زیاد میشه به نوت برسه دلت هور, هور میریزه دل هرهت شدیده استراب شدیده حالا باید از این قرصه شیمیایی سوزاتی رنگ که به سختی هم نصف میشه نصفی صبح با یه لیوان آب نصف شب بخور اما اگر این دارو طبیعه بخوری دیگه نمیخواد قرصه شیمیایی سد تپش قلب بخوری اگر از نوت بره به طرف 140 هر لحظه به اورژانسی شدن به فوریت های نزدیک می شه. به صد و 100 برسا صد درصد اورژانسی. اگر کسی به دادت نرسا منجر به مرگت میشه تو کم شدنش هم همجوره تو خواب عمیق شسته اما اگر کمتر بشه معاملات بیاد به طرف پنجاه فیل حالت بد میشه به چهل برسه اورژانسی. اگر کسی به داد نرسه مرحوم میشه پس تو بحث تپش قلب و بیماریای خون یه مختصری یه گفتن یکی دیگه از فوائد مصرف سیاه دونه بعضی افراد به علت تلاش و فعالیت بیش از حد مثلا بچه های بازیگوش و وظیفش بازیگوشه تا پایان هفت سالگی پدر و مادر و هر عاقل دیگه باید مدیریت دورادور کنند که بچه به خودش و به دیگران آسیب نزنه یا نوجوان و جوانی که فعالیت اجتماعی زیاده. نوجوان و جوانی که فعالیت اجتماعی زیاده. این منیمه زیاد میدهه. برجی برجی میکن. یا مثلا اشخش فوتباله. یه گیم و دو گیم و اینا بازیم. خب اینجا اگر به خودش نرسه مامنام دچار ابتلاعات مختلف میشه. یکی زعف گردش خون. یکی بیرمقی شدید. یکیش مومن ها شدید یکیش درد های و درد های مفصلی یکی دیگه پوکی استخوان هم بده حالا قوی ترین دارو در تقویت گردش خون در اف... افرادی که فعالیت اجتماعیشون زیاده یک قاشق چای خوری از روغن سیاه دونه رو با یک قاشق غذاخوری عسل خالص همراه با دو حبه سیر اگر فشار خون دارد اگر چربی خون دارد با دو حبه سیر له شده مخلوط کرده و مقدار متناسبی هر روز صبح ناشتا به مدت یک هفته میل کنه تقویت گردش خون میشه. چون اگر گردش خونش ضعیف بشه تو برگشت خون تو وریدها تو ها رسوب بیشتر میشه تصالب بر برجستگی رگ میشه واریس رک ها انصداد و ایجاد لخته خون افرق. سکته همون رگ پیش میاد حالا تا این سکته کجا باشه گرفتین موامنام؟ تو قلب باشه میگی سکته مغزی باشه تو مغز باشه میگی سکته مغزی قسمی از سکته ها سکته یه که توضیح دادن موامنام گردش خونت سریع کرد خونت هم رقیق کرد فشارت مناسب کرد تسلط به شرائی نمیگیری رسوب به بیش از حد هم نمیگیری تو برگشت خون از وریدها هم کندی نیست بدنت میاد رو فارم این هم توضیح این مطلب دکتران اگر کسی مثلا جوشهای قرور جوانی دارد قبلانا توضیح دادید با صابون کل خطمی بشوئه بعد خوش کنه. بعد میتونه با محلول سرکه سیب ماساژ بده یا با محلول آبیشن شیرازی ماساژ بده یا بره پماد آکنیل بخره ماساژ بده این ظاهر پوست رو براش یه با دیگه از درون که دیگه جوش نزنه کاهو بدون سس لیمو شیرین انار شیرین دیگه از درون رو برا میشه دیگه جوش نمیزنه بدنت پسا فهم بودیم؟ نگهداری ادرار نگهداری منی نباشه قزوهای چرب و چلیست و اوسانسای شیمیایی و کافئین نباشه اگر بدن دونه زدا بهت جایزه ند هیچ وقت بدن دونه نمیزن تا چه برسه به اینکه دونا بترکه و زیرپوشاد خونیشه حالا یکی از داروهایی که در درمان جوشهای غرور جوانی خوبه چیه؟ این داروی ترکیبی به میزان پنجاه گرم پودر سیاه دانه را خوب آسیاب و نعم شده تهیه شود با پنجاه گرم روغن کنجد خالص و یک قاشق غذاخوری آرده گندم بهتر اینه که آرده گندمش سبوسدار باشه خوب مخلوط میکنیم این ستا یک ترکیب روغنی پماد مانند حاصل میشه که میتوان صبح و شب روی جوشهای صورت مالید به نوع جوشهای قرور جوانی تو بحث نوجوانان و جوانان و پس از حدود یک ساعت با آب گرم و یک صابون گیاهی شسته‌شود. اون صابون تام باشه صابون گله ختمی حاشیه بزنیم به کتاب بنده خدا صفحه 20 اگر کسی های کلیوی به نوع التهابات کلیه دارد و یا عفونت کلیه دارد و یا کمکاری کلیه دارد قبلا من یه چیزایی وسطتون گفتن مثل دوغ شیرین کمچر بدون گاز مثلا یک لیوان به اضافه نصف استکان آب تروب سفید دو دوتا رو قاطی میکنیم میخوریم مثل افونتای کلیت و کمکاریش خوبه دوم اگر شن و سنگ کلیه دارید توعن با تورم خفیف پروستات و کمکاری کلیه چی برد خوبه؟ عرق خارخسک و عرق خارشطری نصف استکان نصف استکان یا محلول مخلصه ساخته داروسازی حکیم تبریز که از خارشتوری و کاکل ذرت و خارخسک درست شده قلیز بود رنگش زرده نصف استکان رقیق بود رنگش سفیده یه استکان می‌خواد تو 24 سن. دو دوتا دارو اینا همه رو گفتم حالا تو بحث خودمون که بحث سیاهدانه است یک لیوان کوچک مثلا یک استکان چقالو که نصف لیوان های بزرگ تو کتابم هم نمشته. یک لیوان کوچک تو پرانتز نمیشه استکان از سیاهدانه را در یک لیتر آب جوشنده چهار الا 5 لیوان آب توش میجوشند و با اصل شیرین کرده به مقدار لازم اصل طبیعی خالص و به مدت یک هفته صبح ناشتا آن را میل می التهابات کلیوی خوب می شود اگر کسی حبس بول دارد یا سخت ادراری دارد یعنی اسر البول ادرارش به سختی دفت می شود که یک آرزه بسیار دردناکه و تو پزشکی جدید وقتی که مریض بیتاب بشه سریع سون می زنن از نکه سپرفنهرش یه شیلنگی می تو تو مسانه تو بعضی حالات که یک کیسه بغل میزنه حالا اینش می حالا سخت ادراری یا آسر البول که تو روایاتش اومده مومنان سخت ادراری یک عارضه بسیار دردناک در چنین آرزه باید چکار کنیم؟ به مدت ده دقیقه یک جوش یا آب وان گرم زیرش قرار میگیریم یا تو وان دراز میکشیم سپس قسمت بالای شنگاه با قول عربا آنه یا از بالای سپرفانه تا قبل از ناف. این منطقه رو قشنگ با روغن سیاهدانه چرب کن و ماساژ بده. بتویم بولت سختیه در دفع ادرارت خوب میشه من تو زنیتون؟ این یکم ابتلابه مبتلابه زندگی شهریه که کم تحرکم غذاهای چرب و چیلیس هم زیاد میخورن فسفود هم زیاد میخورن یه سری بیماری هم میگیرن. یکی از اون بیماریاشون چیه؟ چیه؟ آسرالبوله حالا برعکسش اگر کسی کنترل ادرار ندارد یا ریزش بی اختیاری ادرار دارد یک قاشق مربو خوری سیاهدانه با عسل میخوره شب قبل خواب اما هنگام خوابش که تو بسته میره میخواد بخوابه به مقدار یک عدس قولنجان خولنجان خسرو دارو به مقدار یک عدس زیر زبونش نگه همیده تا آب بشه قرد بده شب ادراری تو هر سنی حتی در کودکان درمان میشه و اگر ریزش بی اختیاری ادرار در روز دارد حتی اگر دیابتی باشه جوشانده پوست مغز گردو این پوست سخت چوبی قهوش که دور مغز گردوه جوشانده پوست سخت مغز گردو به مدت سه شب هر شب یه استکان تازه جوش بخوره بیماری چکمیزک یا ریزش بی اختیاری ادرا هم خوب میشه اگر کسی دل دارد به استداه روایات که تو تبل معصومین قبلا گفتم مقصن, مقصن دلدردهای پیچه پیچشی شکمه مقصن میم غین صاد علف به صورت تنمیم اگر کسی مقصن داره، دلپیچه های شدید داره چند تا دارو هست که قبلا نگفتیم مثلا دو مغزه گردوی پخته شده تو آتیش بعد پوستش میشکنیم دو تا مغزاش میخوری دلپیچه های شدید و پیچه چای خوب میشه حالا اون وقتا چند تا دارو گفتیم حالا مبایست خودم بحث سیادونه اگر روده انسان با میکروب ها و باکتری ها آلوده شد و دوچار مقصن دلپیچه های شدید شد و دلدردهای های درمان آن با سیاهدانه اینجوری به مقدار مساوی زیره به اضافه نعنا به اضافه انیسون به نسبت مساوی این ستار رو میجوشنیم و هفت قطره روغن سیاهدانه خالص یعنی ای که در روغن زیتون جوشانده شده در پای روغن زیتون بعد سرد شده حالا هفت قطعه هم روغن سیاهدانه خالص توش میریزیم و با اصل خالص شیرین میکنیم هر وقت دلدرد یا دلپیچه یا مخصندانی ها یه قاشق از این بخور توی حالا سننا فهم کنه کودک یه قاشق چای بخوری. نوجوان و جوان یه قاشق مرب بخوری میانسال و کهانسال یه قاشق بخوری. اینارم حاشیه بزنین به این کتاب اگر کسی دردهای ناحیه کلون دارد دردهای روده بزرگ دارد یک قاشق غذاخوری سیاهدانه آسیاب شده با یک قاشق غذاخوری عرق شیرین بیان دوتش مخلوط میکنید با اصاره میوه گلابی قاطی میکنید صبح و شب از این داروی مرکبه سلاسه مصرف میکنین درد ناحیه کلون که روده بزرگا سریعا نابمیره یه با دیگه بگم یه قاشق پلوخوری سیادونه آسیاب شده یه قاشق پلوخوری عرق شیرین بیان یه قاشق پلوخوری یا نه یه دونه گلابی اگه بخواید چند روزه یه دونه گلابی آثاره گلابی مخلوط میکن صبح و شب از این مخلوط سگانه میخوری درد ناهی کلون که روده بزرگه درد در این ناهی از بین میرود اگر کسی آسم داره یا تنگی نفس داره یه سری چیزا قبلا گفتم مثل چی مومن مثل دو استکان آب شلغم. مثل دو استکان آب زردک حویج زرد حویج رسمی مثل جوشانده یا دم کرده یا جویدن خوردانه یعنی اچکو. چهارم مثل جوشانده برگ بارهنگ حالا مبارسه خودم ابن سینا در کتاب قانون طبش و چقمینی در تلخیص تلخیص قانون بیمار مبتلا به آسم و تنگی نفس ریق و نفس بخار, بخار روغن سیاهدانه رو استنشاق کنه تا تنگی نفسش بهبود پیدا کنه همچنین بهتره برای تأثیر درمانی بیشتر سینه و حنجرش رو شخص مریض قبل از خواب با روغن سیاهدانه ماساج بده و یک قاشق سیاهدانه آسیاب شده به مقدار دو گرم ناشتا مصرف کنه میشه نصف قاشق چای خوری میتونه با اصل بخوره صبح ناشتا شب قبل از خواب یک قاشق مربخوری با اصل این که قبلنا گفتیم فوائد مختلف در اللهم صل علی محمد محمد